اکنون می درباره در باره سنگ و رنگ یا سنگهای رنگین و رابطه اون با جهان اندیشی ایرانی صحبت بکنم تا ما روند پیدایش یک بینش را می‌دانیم، اون بینش خرافه نیست ولی وقتی روند پیدایش بینش خود را نمیدانیم یا فراموش ساختیم اون بینش ما خرافه می شود اینکه سنگ های رنگین در گذشته رابطه تنگاتنگ با جهان بینی و فلسفه زندگی ایرانی و خدایان ایران داشتند، به نظر ما خرافه می رسد. چرا؟ چون پیدایش این بینش را نمیدانیم ولی ما می چگونگی پیدایش این بینش را بررسی کنیم و ببینیم که در این دادن ها چرا می‌خواستند؟ چرا میخواستند بگویم چه محتبیاتی را در این پیوند سنگ رنگین با خدایان با جهان با زندگی بای میخواستن بیان کنند سنگ های رنگین رابطه تنگاتنگ با پیدایش جهان بینی ایرانی از زندگی و گیتی و گیتی و خدایان داشتن در شاهنامه دیده می شود که جمشید که مبتکر مدنیت در گیتی است از نخستین عناصری که مدنیت را تشکیل میدهند یکی نیز یافتن سنگ و گچ است که با آن دیوار و خانه و کاخ و گرمامهمیسازد و سپس میآید که زخوارا گوهر جست یک روزگار همی کرد از او روشنی خواسدار به چنگ آمدش چند گونه گوهر چویاغوت و بیجاده و سیم و زر ز خارا به افسون برون آوری شد اون بندها را سراسر کلید خار و خاره و خارا در کتابهای لغت هم معنای سنگ سخت هم معنای زن و هم معنای پارچه ابریشمی و هم معنای ماه شب 14 را دارم اگر بخوایم کاملا به این تیپ معانی پی بریم این خوشه معانی باید یادآوری کنم که این خارا خره و خا اینها اینا همه به واجیه هر برمیگردند که نی باشد و هم نی است هم زن حالا این تبدیل شده است به اینها که هم سنگ است سنگ سخت هم معنای زن است هم ابریشم ابریشم که این پیله ابریشم در چیز کرم ابریشم در پیله ابریشم بود این معنای تخم و زهدان داشت و هم معنای ماه شبا چارده که همونطور که گفتیم ماه پر است که باز همون اختران ماه و خوشه پر بینست جمشید حالا در خارا گوهر می جوید و از آن خواستار روشنی است گوهر که گرد در پهلوی باشد به معنای ذات و ماده اصل و سنگ قیمتی است گوهر گوهری در پالبی به معنای طبیعی و ذاتی و اصیل هست البته گوهر که گعوتره باشد در اوستا به فلزات هم گفته می شده است در سقدی. جمشید چرا گوهر را از خارا می چون خواستار روشنی بود این برای ما معنی نمیدهد باید معنی رو پیدا کنیم سنگ رو از خوارا می چون که روشنی میجوز خارا که این همانی یه زن با ماه و با نی دارد نشان میدهد که زایش گوهر از زن یا از ماه مرچه است زاده شدن روشنیست این گوهرها که گوهرهای رنگی که یاغوت و بی جاده و سیم و زر و امثال آنها هستند سرچشمه روشنی یعنی سرچشمه بینش هستند برون آوردن گوهر از خارا کلید گشودن بندها شده است گوهر و اصل روشنی از چیزها است. ببخشید زایاندن گوهر و اصل روشنی از چیزها زایانیدن است روشنی از ماه زاده می شود ماه را گفتیم نیست این کلمه روشنی اونجا دیدیم در گفتگوهای پیش زد مینو از ماه پیدایش میگذار میکنند کلمه روشنی دو واجه است یکی را و خشن است یکی را و کنه است را و خش خشنه همون نی است که به زنم گفته میشده است یعنی مایه روان از نی را و کنم همی جور است کنم, کنم معنای نی دارد اینها را محفوم روشنی از زایش شیره نشکر از نی و یا زا... زایش کودک از زن از مادر این پروند رو نوشنی میگفتن این خیلی مهم است برای درک پرهنگ ایران حالا او از برون آوردن سنگ های رنگین خواستار روشنی است چرا؟ چون رنگ که یک باجهش گون است یک روش رنگ بون است که در اصل گونا بود شد معنای اصلی گون چیز موی هست که این همانی با گیاهان داشت در بندهش میبینیم در جا متون دیگر که همیشه موی را این همانی با گیاهان میدن و از شیرابه گیاهان رنگ پیدایش میاد گرفتن شیرابه از گیاهان نیز یک روند زایانیدن بوده است و سنگ خارا یعنی هره به معنای زهدان است چنانچه سیستانی ها به زهدان سنگک میگویند. امروز ما نان سنگک یعنی اک تخم است در زهدان و کرد به سینه سنگ میگویند. سنگ گوتان یعنی سینه زدن و درست این جد این جد این مینو یه ذهدان زن یا جد ماه پر که ماه شب چهارده است که همون مینو یا گوهر هست درست بی جاده نام دارد یکی از نام های بیجاده بی جاده است حالا این بی جاده بی جد همین معنای جد رو دارد البته من راجع به بی جاده در گفتارهای بعد گسترده تر سخن خواهم کرد. در کتاب اساطیر که اپی پی منتشر کرده است متنی از روایات پهلبی با داستان دینیک ترجمه کرده که با این جمله آغاز می شود نشان مهره که به کار بردن آنها نیک به درمان بخش است که از آسمان است و مردم خرمتر و رامشتر دارند در گزارش این مهرها که می میبینیم که فقط رنگ آنهاست که اهمیت اصلی دارد نامی از یاغوط و بیجاده و عقیق و لعل و اینها نمیبرد بلکه میبینیم در گزارش این مهرها فقط رنگ آنهاست که اهمیت اصلی را دارد و از این رو نام سنگ سنگی برده نمی شود مهره سرخ مهره آسمانگون مهره خشین یعنی کبود مهره سبز مهره زرد و با داشتن این مهره های رنگارن تأثیرات آنها هم بر خود دارنده و هم کننده ی آن و هم بر دیگران و بر گیتی بیان می شود و در پایان می آید اینجاست که نقطه اصلی است. این مهره ها از گوهر یزدان که نیروی هفت رنگ دارند هست خوب دقت کنیم این مهره از گوهر یزدان که نیروی هفت رنگ دارد هست به خوبی دیده می شود این سنگ های رنگین گوهر یزدان دارند و گوهر یزدان چیست؟ نیروی هفت رنگیست البته از همان پیدایش از خارا متوجه همگوهری این سنگ ها با خدایان شده ایم چون که دیدیم ماه پر از ماه پر این سنگ ها این روشنی پیدایش شد این بهترین اشاره است که این سنگ ها رابطه با خدایان دارن یعنی از خدایان پدید آمدن ولی بهتر است که در این موضوع دقیقتر و جربتر بشه از این رو بررسی ها را با پدیده سنگ شروع میکنم و سپس به سنگ های رنگین میپردازم چون ما معنی اصلی سنگ را فراموش کردیم بسیاری از بینش های درخشان امروز ما خرافه بیش نیستند. همین واجه سنگ سبک شده است و تبدیل به سگ و سک و سخ و سه وسیع شده است چون که این سنگ با در انگلیسی با ته اچ نوشته می شود در یونانی با ته تا. اینها وقتی که به زبان که این تها را ندارند تبدیل می شود این سنگ این یا سنگ می شود یا زنگ می شود و این است که یا تنگ می شود این است که معانی یا هنج می شود اینها همه یک واژان معنای سنگ مثلا سی مرغ سی مرغ در برهان قاطعه هم سی رو میبینید معنای سنگ دارد همین واجه است به معنای مرغ سنگ هست. یعنی چی؟ یعنی مرغ عشق و مهر در عطار میآورد مرغ کوهپایه پایه مقصودش همین سی مرغ است. سر و در لغتنامه ها میداده میشد که صحیح نیست سر و همین معنای یعنی سر مهر، سری که اصل پیوند است، این چنین معنایی داشته است. حالا از این رو به هر که در آن مهر و دوستی و پیوستگی محکم را می‌آبند، اون را سنگ یا سگ یا سخ یا سگ یا سی یا سه می‌نامیدند. سه. مثلا نام آسمان سک سگ بوده. است. برای ما تعجب است که ما به سگ سگ میگیم با آسمان هم سگ میکنن مثلا به حیوان با که از همون آغاد با انسان دوست شده است برای این خاطر سگ میگفتن یعنی پیکریابی اصل دوستی و مهر ولی ما امروزه همون مهر و دوستی و وفاداری را در این حیوان تحقیر میکنیم و او را نجس میدانیم و به کسی که میخواهیم پش بدهیم او را پدرسگ و مادرسگ میخوانیم در حالی که پدرسگ به معنای آن است که پدر تو اصل مهر و دوستی بوده است و ما درست ندانسته با این فش مهر و دوستی و یگانگی و بستگی را خار میشماریم حالا همین مثلا در اوستا در خود اوستا میبینیم واجه سنگ و معنای سخن و سخن گفتن و کلمه هست و این در پهلوی شده از سخون؟ که همون سخ همون واجهه سنگ است. چرا به سخن سخن گفته می شود؟ چون که اصل پیون دادن مردمان به همن اصل پیون دادن تجربیات و افکار به هم است؟ ولی این اصل پیوند دادن از سخن ایرانی خیلی مهم است از سخن ایرانی هدفش پیوند یافتن با مردمان بوده است نه هدفش جنگ و دعوا و مشاجره و مشاجره و و و تضاد و جنگ و دعوا و جدال این قایت ببینید قایت قایتی که ایرانی از سخن داشته است در خود خواجه سخن هست حالا ما میگوییم که سنگ سخت است و نمیدانیم که سخت هم همون باجه سنگ است سخت مثلا سنگیدن در کردی یعنی تجربه کردن سنگاندن همین واژه سختنم هم همین معنا رو دارد گفته سخته حالا سنگ سخت است یعنی اجزااش با هم پیوسته بود مستحکم است مثلا واژه ساختن که به معنای آماده کردن و مرتب کردن و موافقت کردن است با هم ساختن سازش از همین روی ریشه سخت می آید. فلسفه بدون درک ریشه های واجه یک فرهنگ هر پیست کاملا توهی از این رو ترجمه هایی را که ما از فلسفه های خارج می کنیم همه بی ریشه است. چون که پیبند ب این واژه اصل واجه های ما ندارند ما اینا رو به هم میچسبانیم ولی اینها اون واژه اون منش واژه اینها را از خودش دور میتکاند میریزد حالا این این سکلمه که ما به سگ میگوییم به جای در سگ به جای ستایش مهر و وپا او را خار می شماریم. تنها به سگ باقی نمانده است این در ادبیات ما شده سگ نفس حتی شده سگان طبیعت همه طبیعت و گیتی را سگ میکنیم. ولی از طرفی فراموش میکنیم که میگوید در اشار میخوام سگ کویار باشم باز در اونجا هم در سگ کویار یک نوع تخییر خودش را میبینم و اصل مطلب که این یعنی من میخوام مهروب هم را میخوام نشان بدهم چندان قبی متوجه نمیشود حالا از اینها گذشته چنان که گفتیم برترین امتیاز انسان که سخن گفتن هست و در ابستا درست واجه سنگ خود واژه سنگ به کار برده شده است از و از همین واژه سخن هم از سخ که سگ باشد ساخته شده است. سخن اصل به هم پی بستن و امتزاج و دوستی انسان ها با هم است حالا این من اینها را که میگویم برای خاطر این که این آگاهی ما آگاهی فلسفی ما نهنی که مقصودم از زبانشناسی ردیف کردن باجه ها نیست مقصودم پی بردن به باجه های فوق العاده مهم در فرهنگ ایران است. مثلا ما به سقز که در اصلش سکز هست چرا؟ چونکه این همین است. یعنی به هم چسبیده یعنی چیزی که کشش دارد واجهی را که ما خیلی امروز به کار میریم سکه هست به امروز ما به معنای بسیار تنگ پول فلزی به کار که ولی این چرا به این سکه گفتند یکی دروی به هم پیوسته دارن یکی اینی که با میخ سکه سکه را میزنن نقش میزنن و انسانها را در مبادلات به هم میپیوندن ولی این سکه سک سکه معنای بیشتر از این داشته است معنای قاعده و قانون و سیرت و آهنی را که به دزدان زمین را شیار میکنن خیش و یوق یک وسیله است که مفهوم عشقی داشته است زمین را شیار کردن مفهوم عشقی داشته است و گذاشته از این سکه به هر چیز خوبی گفته میشه است این چیز سکه است ببینید همین واژه در کردی برایندهای دیگری را نگاه داشته است مثلا سکانن چسبانیدن است سکدار آبستن است سک هم خیلی مهم است هم به شکم و هم به جنین گفته می شود یعنی چی؟ یعنی این دو با هم اصل آفرینندگی هستند. حالا این ما پراموش کردیم که همه این پدیده های ارزشمند و ارجمند مثل سکه مثل سخن سکه سنجش سنجر سنگام سنگار سازگاری همه اینها سخن همه اینها از همان پدیده سنگ و سگ پدیده آمده است که امروز برای ما بیشتر معنای منفی دارد چنانچه انسان سنگ دل یعنی انسان قصابتم سنگ دل کسی که احساس ندارد اطوفت و مهر, مهر ندارد درست وا رونه معنای سنگ یا به چیزی که خیلی سنگین است و نمیتوان حمل کرد یا دشواری میتوانه کرد به اون میگویم سنگین است از این رو نمیفهمیم از این رو نمیفهمیم چرا نیاکان ما با آسمان آسان یا سنگ میگفتن یا آس میگفتن اینها همش همهش من منیش سنگ هم از سنگه شده از آسن چونکه آهن هم همون است تر شاهنامه اقلب از این مشتبه سازی استفاده شده از نه جلوتر هوشنگ جمشید اول آهن و این هم برای اصله میسازن در صورتی که این آهن معناش یعنی اصل مهر و محبت میسازن ولی اینجا برای خاطر اینی که جنگجوعی و نزاغ و اینها را اساس کار قرار بدن با میترایه البته این شروع شده است بعدش زردوشتی ها اون را پذیرفتن این کلمه را آهن را درست به معنای بارونه سنگ بکار بردن در صورتی که در داستان ها میبینیم آهن اصل پیوند دو, دو فلز به هم است حالا اینکه آسمان سنگ است وقتی میگویم آسمان سنگ است ما برای ما خرافه گذشتگان سبز می شود. آسمان آخر چرا آسمان سبز است عجب هر و است در, خلاص در حالی که خرافه خود ما هست چون روند پیدایش آن را نمیدانیم معنای اینی که معنای اصلی سنگ، سخ سخصار را فراموش کردیم روند پیدایش بینشاور و اوشانی های خود را نمیدانیم همانسان برترین ویژگی خرد و اصل خرد را در فرهنگ ایران از واجه آسان خرد میشود چناخ از این رو نمیدانیم این آسان خرد چیست؟ در متون زردشتی یا ترجمه میکنن به خرد قریزی که کاملا غلط است، چون که خرد نمیتواند قریزی ترجمه باشد قریزه و خرد دو چیز جداگانه یا ترجمه میکنند به خرد ذاتی این خرد ذاتی یعنی چی؟ بی ها بیمعناست ولی آسن خرد که خرد بهمنیست خردیست که پدیده, پدیده ها و آزمونه ها و اندیشه ها و هواس را با هم ترکیب بیکند سنتز میکند میآميزد با از این سنتز میآپریند آسان خرد خرد از خود خرد قائم بذات یعنی مستقل است این آسان خرد اصل آزادی و استقلال انسان هست این فوق العاده این کرمه با خرد ذاتی از اصالت می옵تد مسئله این است که این پیوند این خودش پیوند میدهد و از خودش در خودش این بیجگی یه پیوندگی هست و خواه‌ناخواه وی بی آفریننده بینش است این خرد آسان خرد درست بزرگترین کشف فرهنگ ایران از خرد است که خرد اصل خرد آسان خرد اصل آزادی هست اصل استقلال هست به این و بدونه برای این خاطر این را اسمش مینوی خرد میگفتن مینوی یعنی چی؟ یعنی ژد خدایان در انسان است. یعنی شیرابه نطفه خدا که در انسان انداخته شده است، هم که آتش جان باشد این خودش اصل بینش و روشنیست حالا این آسن خرد را انقدر کج کوله کردن که اغلب ایران شناس نمیدانند چرا این را چه معنای کنند چون که این فرهنگ را و این مفهوم سنگ را این پدیده بی سنگ را که فوق ولاد مهم بوده است در نظر نمیگیرند و اصلا در ذهنشان هم چیز نمیشود این است که یا این هی علمی گفتن این تحقیقات ایران شناس خارج این محدوده دارد این محدوده این است که این فرهنگ ایران فرهنگ پیش از زردوش رو که بعد از زردوش هم ادامه داشته است این فرهنگ رو درست نمی‌شناسن خرافه مؤسنگ ما را از درک معنای اصلیش باز میدارد مثلا خدایی که بن هر انسانی نهاد و گوهر اصلی هر انسانی بهمن بوده است نام دیگرش آسانبغ است. البته هوشنگ همین است، هاوشیان درست همین است. یعنی این آسانبغ یعنی این سنگ خدای. برای ما خدایی که سنگ باشد همون بتی هست که زردشت و محمد و موسی می شکستن. سنگ رو باید شکست. خدایی که از سنگ هست ساخته شده دست انسان است باید شکست درست ولی درست چی را میشکستند چیزی را میشکستند که پیکریابی اصل پیوند و مهر و یگانگی و دوستی بود درست چیز را میشکستند که اصل آزادی و استقلال بود اصالت دنیا را اصالت گیتی را بیان میکرد چون روند پیدایش بینش انسان را فراموش کرده بودند این بینش که مهر و دوستی و به هم پیوستن سرچشوه آفرینندگی روشنی و بینش است با این شکستن با همین بودشکنی قایمار می شود این آسنبغ را به عنوان جاهلیت و خرافه می شکستن و نمی دانن که اصل مهر و وفا و دوستی و به هم پیوستن را به عنوان اصل آفریننده اصل از خدافرینی از بین میبرن و این بینش خود را که در اثر فراموش کردن روند پیدایش بینش بود نور و روشنایی و علم و هدایت میخونند همه دنیا را با چنین بینشی ارشاد میکنند